خدای یگانی مهربان سلام افسانه‌ها یادمانی از زندگی ابتدای بشرند و از زندگی مردم مایه گرفتن، خوندن و شنیدن افسانه‌ها به شکوفای قدرت تخیل و در نتیجه خلاقیت ما به ویژه کودکان ما کمک میکنه و مایه لذت سرگرمی و کسب تجربه های ارزشمند برای ما میشه. افسانه از مردمان ترکمن و آسیای میانه رو براتون نقل کنم به نام افسانه مرد ثروتمند و مار اثر عبدالرحمن دیجی برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا که شامل پنجاه و دو افسانه زیباست در زمانهای قدیم وقتی که بودند و ما نبودیم مرد ثروتمندی زندگی میکرد. اون اون اونقدر ثروت داشت که برای اندوختن سروتهاش جا کم می آوردن اما اونقدر بیرم بود که به کسی کمک نمیکرد. و اصلا اهل بخشش و سخابت هم نبود که نبود یه روزی مهمونی به خونش می با نون خشک از اون پذیرایی می مرد خسی خصیص افثانه ای ما حتی به خانوادهش یعنی همسر، پسر و عروسش اجازه نمیداد قضاگی درست و حسابی بخورن و مدام به اونها گوشت میکرد این قد نکنین من اصلا دوست ندارم کسی توی خونم پرخوری بکنه اما خودش به اندازه چند نفر می میخوند اون اگه میخواست جایی بره اولین سفارشی که به زنش میکرد این بود زن خوب حواستو جمع کن. با به ثروت و دارایی من باش ولخرجی خرجی نکنی آ. من دوست ندارم کسی توی خونم ولخرجی کنه. ملتفت شدی چی گفتم؟ زن هم همسری به علامت فصیق تکون میداد و زیر لب قرلان می کرد. روزی از روزها یکی از همسایه ها خبر آورد برد که میگن توی آبادی بالای رودخونه گاو و گوسفند ارزون شده مرد ثروتمند با شنیدن این خبر فوراً به طرف روستای بالای رودخونه براه تا به اونجا بره و مقدار زیادی گاو و گوسفند بخره مرد سروتمن همینطور که داشت پیش میرفت چشمش به گوتی حلبی زیبایی که روی زمین افتاده بود افتاد با خوشحالی خم شد و قوطی رو برداشت قوطی کمی سنگین به نظر میرسید مرد با هیجان گفت دارم چیز با ارزشی توش باشه شاید بر از سکه های طلا باشه یا مهره ها یکگرون و بعد با خوشحالی در قوطی رو باز کرد به محض باز شدن در اوتی مار بزرگی از داخل اوتی بیرون پرید و به دور گردن مرد حلقه زد و هر لحظه حلقه رو تنگ و تنگ تر می مرد که خیلی ترسیده بود با حالت خفگی گفت ای مار چرا اینطوری دارید کردنم حلقه زدی مگه مگه از من چه بدی دیدی مار جواب داد از تو چه بدی دیدین؟ مگه نشنی که گفتن پاداش خوبی بدیه ها؟ این یه ضرب مسئله معروفیه اینطور نیست؟ مرد با همون حالت خبرگی جواب داد نه, نه درست نیست پاداش باد خوبی خوبیه اون خفه بشم من تو را از داخلی قوطی آزاد کردم آه! درست نیست که تو منو خفه کنی مار گفت ولی من این حرف تو را قبول ندارم پاداش خوبی پتیه. همه اینو میکن مرد گفت ولی من که پاداش خوبی خوبیه تو اشتباه میکنی درم خفه میشم مار گفت نه نه نه تو اشتباه میکنی پاداش خوبی بدیه مرد گفت اه اه اه اگه میخوایی بدونی حرف کدوم از ما درسته بهتره از چند نفر بخواییم در مورد ما قضاوت کنن از چه اونا گفتن من قبول میکنم اگه حق با تو بود اون وقت, اون وقت. مار پرسید اون وقت چی؟ مرد گفت اون وقت تو میتونی براحتی من نیش بزنی یا قفن کنی مار فکری کرده گفت باش قبوله مرد گفت خب حالا که اینطوره بس اینقدر به فشار نیار درام خفه میشن مار پذیرفت و حلقه دور گردن مرد رو کمی شل کرد اونا قبل از همه نزد گله گوزفندانه مرد سرمتمند گله دوستانت های مرد ثروتمند توی سر سرسبز رها شده و در حال چریدن بودن کمی دورتر سگ پیری مراقب اونها بود مرد ثروتمند به مار گفت بهتر است سگ گله بپرسیم اون سگ با تجربه ایه. بعد به سگ گله نزدیک شده و گفت ای سگ پیر درسته که میگن پاداش خوبی بدیه سگ پیر آهی کشید و جواب داد آ بله درسته هرچه خوبی میکنی بدی میبینی مار پرسید پس تو هم میگی پاداش خوبی بدیه درسته مرد ثروتمند با ناراحتی از سگ پرسید چرا این حرف رو میزنی سگ رو به اربابش یعنی مرد ثروتمند کرد و گفت ببین ارباب الان سالیان ساله که من از گوزفنده تو مراقبت می و هیچ وقت نزاشتم دست گرگی به گوزفندات برسه ولی تا به حال نم من و نه چوبونه گلت هیچ کدوم حتی زرری گوشت نخوردیم و غذامون فقط نون خوش بوده اما خدای نکرد نکرده از گوزفندات اجلش برسه و بمیره اون وقت با بیرحمیه تموم دمار از روزگارمون در میاری خب این بدی نیست که در عوض خوبی میکنی با شنیدن این حرفها رنگ از صورت مرد ثروتمند پرید و سرش رو به زیر انداخت مار به مرد گفت حالا جوابت رو گرفتی پس تبه شرط خودت الان آماده باشم میخوام تورو رو نیش بزنم و مرد صرفتمند با التماس پری توی حرف ما رو گفت نه نه نه صبر کن مهرزی صبر کن خواهش میکنم صبر کن این سگ پیر شده و دیگه خوب رو از بد تشخیص نمیده نمیشه رو حرف این سگ پیر حساب کرد بذار بذار بذار از کس دیگه بپرسیم خواهش میکنم اجازه بده مار قبول کرد و با هم نسل های مرد ثروتمند رفتند مرد ثروتمند و مار رفتن سراغ گوسفندای اون مرد که در مرزار مشغول چریدن بودن. بعد از اونا پرسیدن درسته که میگن پاداش خوبی بدیه؟ گوزفنده جواب دادن بله درسته. مرد ثروتمند با عصبانیت پرسید چی رو درسته؟ چرا این حرف رو میزنین ها؟ گوسفندا به مرد ثروتمند جواب دادن ارباب ما هر سال چند بره بهت میدیم و تعداد گوسفندای تو رو زیاد میکنیم ولی تو هیچ فکری به حال ما نمیکنی برای چرای ما زمین سرسبز فراهم نمیکنی و ما مجبوریم به مرزارهای مردم بریم و اونجا خودمون رو سیر کنیم این بدی نیست که در عوض خوبی میکنی مرد ثروتمند با عصب همیت گفت شما گوسفندای یه نشناسی هستین و بعد خطاب به مار گفت: ای مار عزیز به حرف این گسوندهی قدر نشناس اکتفا نکن بیا بیا بریم سراغ شترها، اونا خیلی با کمال ترس گسونده هستند هرچی اونا گفتن قبوله مار این بار هم قبول کرد. اونا رفتن سراغ شترها. مرد ثروتمند و مار نزد شطرهای مرد ثروتمند رفتند. مار گفت بزار این بار من از این شطرها بپرسم و بعد به مرد گفت به سراغ پیرترین شطر بریم و از اون بپرسیم مرد ثروتمند به پیرترین شطر نزدیک شد مار از شطر پرسید ای شتر و پیر درسته که میگن پاداش خوبی بدیه؟ شطور پیر آهی کشید و جواب داد آه بله درست مرد سربادمند با شنیدن این حرف از کور در رفت و با عصبانیت داد زد سکت مار حلقه دور گردن مرد رو تنگتر کرد مرد با حالت خفگی گفت درم خفه میشم اون درد به منم نیار مرد از شطر پیر پرسید پس تو هم میگی پاداش خوبی بدیه نه؟ شطر پیر گفت بله درسته. پاداش خوبی بدیه بعد چند شطر جوان رو به مار نشون داد و گفت ای مار عزیز این شطرهای جوان رو میبینی همشون رو من به دنیا آوردم و برای ارباب بزرگ کردم ولی این ارباب بیرم تا به حال هیچ خبری از حال من نگرفته زمستونای سرد هیچ جای گرمی ندارم دیگه دندونیم برام باقی نمونده که غذام رو خوب بجارم. ولی ارباب توجهی به من نمیکنه. پاداش خوبی من همینه. بعد رو کرد به مرد ثرتند و گفت: حالا میدونی چرا منم میگم پاداش خوبی بدیه بار به مرد ثروتمند گفت حالا چه جوابی داری بدی؟ آماده باش آماده باش که وقتشه تو رو نیش بزنم و همه رو از دست خصاصت و بی رحمیت نجات بدم مرد ثروتمند با شنیدن این حرف احساس خطر کرد. برای همین هم شروع کرد به خواهش و تمنا و از مار خواست از یه نفر دیگم بپرسن با التماس گفت خواهش میکنم خواهش میکنم فقط یه بار دیگه اگه این بار مذکوم شدم و حاضرم منو نیش بزنی و بکشی این بار هم مار پذیرفت که از نفری دیگه بپرسن آیا پاداش خوبی بدیه یا نه مار و مرد ثروتمند رفتن و رفتن تا به خونه مرد ثروتمند رسیدن مار از همسر و عروس مرد پرسید به نظر شما پاداش خوبی بدیه زن و عروس مرد با اندوه جواب دادن بله درسته پاداش خوبی بدیه مرد با شنیدن این حرف که انتظار شنیدنش رو از زبان زن به عروسش نداشت با اصابانگیت گفت سکت! اگه یک کلمه دیگه بگین از این خونه بیرونتون می کنم تا از گرستگی بمیرین شما آدم های قدر نشنوزی هستین فقط بلدیم اصراف کنین و دروغ بگین مار حلقی دور گردن مرد رو تنگتر کرد و مرد گفت آه بری چکایی نمیتونم نمیتونم نفس بکشم مار از زن و عروس مرد ثروتمند پرسید پس شما هم میگید پاداش خوبی بدیه نه زن و عروس هم جواب دادن بله درسته پاداش خوبی بدیه هرچند ما خانواده خیلی ثروتمندی هستیم ولی این مرد هیچ وقت نذاشت که ما یک غذای درست حسابی بخوریم لباس خوب بپوشیم در حالی که ما شب و روز توی خونه در حال کار کردنی و زحمت می مرد ثروتمند از شنیدن حرف های زن و عروسش حاج و واج مونده بود. مار گفت. خب، حالا دیگه مندازه کافی از این اون پرسیدیم. تو جواب خوبی دیگران رو با بدی دادی. حالا؟ حالا باید بدی ببینی. مرد ثروتمند خواست دوباره التماس کنه یه فرصت دیگه بخواد اما مار گردن اون رو فشار داد و حلقش رو تنگ کرد مرد ثروتمند در حالی که داشت خفه میشد به زحمت زیاد گفت حق،, حق با توه درست گفت که باداش می بدیه علتش هم سعادت های من و منه ولی آه... ای مار به من رم کن من قول میدم از این به بعد آدم خ... مار گردن مرد ثروتمند رو بیشتر بشار داد و گفت من از این حرفای بی خود زیاد شنیدم و مرد ثروتمند رو نیش زد و کشت. افسانه مرد ثروتمند و ما رو از مردمان ترکمن و آسیای میانه براتون نقل کردم. برگرفت از کتاب افسانه‌های مردم دنیا اثر عبدالرحمن دی‌جی که به سحا افسانه‌های زیبایی در این کتاب وجود اندیشه اندیشه‌ها و پیام‌های ارزشمندی که در بطن افسانه‌ها نهفته‌اند، اگرچه ریشه در ناخودآگاه آدمی و جرف های فرهنگ مردم دارند، اما دائم در حال تغییر و تفسیر تازه و از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا میکنن و مورد بررسی قرار میگین به که به معنا و پیام افثانه توجه کنیم و از اونها پند و عبرت بگیریم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بود ویراستار بهار گیویان اجرا محران دوستی صدابردار ستاره همیدی تایید کننده زهرا عبدالله زاده تا اسامی دیگر بدرود